بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین علی وصحب اجمعین اما بعد قبل از اینکه بحثو شروع کنیم یک دور می روی اون چیزی که دیشب داشتیم فرهنگ زندگی یا فقه زندگی اون چیزی که اسمش مابوداشی فرهنگ هر چن که هم هست فقه زندگی هست یا قانون زندگی هر اسمی ما میتونیم روش بذاریم این دست ما خودمون اون آدابی که ما باید در زندگی باید مراعاتش بکنیم چنانچه در قرآن و سنت اومده ما وقتی که بحث شروع کردیم بحث از محاصن ازدباج را گفتیم بحث عبودیت خداوند بحث اینکه ایمان انسان کامل تر میشه بحث اینکه آرامشی بر ما حاصل میشه در زندگی زناشویی و همچنین این که سبب میشه که اعمال انسان پس از مرگش برایش نوشته بشه و پایدار بمونه. و همچنین این که سبب بشه اون ازدواج ما خیلی از محاسنم کسب بکنیم از صدقاتی که خداوند گذاشته ما به دست بیاریم. حالا سوالی که در ذهن مطرح میشه در بحث محاسن ازدواج اون خواهری اون کسی که دیگه تمعش در ازدواج نداشته باشه. شاید سنش بالا رفته یک نحوی شیطان شاید بس بسهش بکنه که دیگه تو دیگه دل تو از اززواج بکنه خب دیگه برای سودی نداره به درده رو میخوره شاید شیطان انسان رو بس, بس, بس بکنه شاید یک دقیقه فکری برای ما باشه ما اون چیزی که یاد میگیریم در این مدرسه لازم نیست که باید عملش بکنیم بلکه شاید اون چیزی که اینجا می‌کنیم به درد دیگران بخوره به دیگران مشورت بدیم مثلا بفرض این طرحنگ زندگی بفرض ما ازدواج نکردیم بفرضن بخت ما باز نشد بفرضن تشکیل خانواده ندادیم میمونه که ما میتونیم عامل خیر بشیم خیلی از اشخاص مشکل دارن مشکلشون رو حل بکنیم توجیهشون بکنیم علم بالاخره انسان استفاده میکنه انسان هر یک از ماها هر یک از ما انسان ها به یک نحوی امتحان میشیم یک شخصی در جوانی شوهرش فوت میشه ازدواج کرده و بعد با دو تا بچه خاطر اسیر میشه یک شخصی دیگر توفیق ازدواج رو پیدا نمیکنه یک شخص دیگر شوهرش مبتلا به سرطان میشه یک شخص دیگر مبتلاش شوهرش مبتلا مرض مزمن میشه هر یکی از ماها به یک نحبی فکر نکنیم که ما وقتی که مبتلا میشیم مصیبتی دچار میشیم فکر نکنیم که ما بدبخترینی ما بدترین انسانهای روز زمینیم خیلی خداوند عدل و انصافش طوریه که هر کسی را به یک نحبی امتحان بکنه آزمایش بکنه و قرار نیست که همه ازدواج بکنه قرار نیست خدمت خدا بر این بوده یک شخصی ازدواج بکنه شوهرش از دست بده یا شوهرش مریض بشه یا یک کسی دیگه اصلا ازدواج نکنه اینتحاناته یک شخص دیگه شاید ازدواج بکنه شوهرش هم براش بمونه ولی فرزندش از دست بده فکر نکنید که این مصیبت ها آسانه انسان ازدواج بکنه فرزند بشه فرزندش از دست بده خیلی بدتره از اینکه ازدواج نکنه یا شوهرش دست بده خیلی بدتره یا شوهرش مریض باشه که دیگه محتاج دیگران باشه مثل ایوب علیه السلام همسرش نوکری میکرد خدمت گذاری میکرد میرفت پیش این اون تا اینکه که حاجات زندگیشو برآورده بکنه اون شخصی که پیامبر خدا بود همسرش این اینطوری بود پس لازم نیست که ما اگر فقی یا فرهنگی یاد میگیریم از زندگی، درباره زندگی لازم نیست که ما تطبیقش بدیم. ما گفتیم، سعی و تلاشمون می کنیم، اینکه انجام بدیم. لازم نیست که اجرا بشه. هرچنگه هیچی که از ما نباید معیوس از رحمت خداوند بشه. قدود داشته باشه، ناامید بشه اتر رحمت الهی ما باید همیشه امیدوار باشیم. و اینکه که حسن زن به خدا داشته باشیم. اگر به فرض ما باز نشده، اگر توفیق از پیدا نکردیم حتما یک حتمتی توش هست غیر از اون که امتحان خدا هست حتمت خدا روش هست خدا بند هر بندی رو به یک نحر امتحان میکنه همون خب، تر که رو خدا بند قوم تالوت و امتحان کرد. از کنار روی رد میشدن وقتی که به اون رودخونه رسیدن در حال تشنگی رفته بودن به نبر خدا میفرد این الله اکتلیکن به نهر به رودی خدا من شما را امتحان می کند فمنشر و امین هفلی سمینی کسی از اگر بنوشی از آب آب، گوارا، تشن لبان منوشی این امتحانه من فقط مثال از امتحان زدم همچنکه مثال ها در باره امتحان ها غیر زیاده فکر نکنیم که ما قراره که تمامی خوشی رو در دنیا داشته باشیم مؤمن باید در این دنیا مثل یک مسافری باشه. اومده زیر درختی، زیر سایه‌ای استراحت بکنه تا اینکه بعد وارد بهش بشه. سفرش رو ادامه بده. ما نمی‌مدیم که اینجا پایدار بمونیم تا ابد ده زنده بمونیم. نه چند صباحی، چند روزی زنده هستیم. و بعد از اون در کفن ما رو می‌بوشونن. کفنی که نجیبی داره. نمی‌تونیم مالی دنبال خودمون ببریم. در یک جایی می‌خابونن که بین ما و خاک‌ها شاید چهار انگش و پنج انگشت بیشتر فاصله نباشه. آخرش عاقبتش اونجا جایی ما جایی میلیاردها آدم قبل از ما اونجا بوده جایی ما هم, هم اونجا خواهد بود. قرار نیست که ما همه هامون رو در این دنیا داشته باشیم. پس اگر ما محاصلن ازدواج را میگییم فقط برای این نیست محاصلن ازدواج را میگییم فقط برای این نیست که تمل لذت زندگی خودمون را بکشیم بچشیم. بلکه برای اینی که حسن دین خدا را هم در بیابیم چقدر دین خداوند نیکه چقدر دین خداوند درش خوبی ها هست و در مخالفت در ضد اون فحشا و منکر چقدر بدی درش هست این نیکی دین اسلام ما مثال فحشا رو زدیم مثال زنا رو زدیم چقدر درش بدی هست در کنارش دین خدا چقدر خوبه سکن و سکونت و آرامش و نمی دونم و رحمت و همه اینها ما در زندگی زناشویی داریم از اون مسئالی که داشتی کلیدهای خوشبختی بود شناخت حقوق و واجبات شرعی که ما باید، شخصی که میخواد ازدواج کنه باید بدونه شناخت روان مهمه که زن و شوهر بدونن که هر کدوم از اونها چه روانی دارن اهمیت دادن به ارتباط فطری پرورش عواطف و احساسات دواز احساسات و سازش و حقایق کی این مسئله که الانم بهش اشاره کردم در ضمن سازش با حقایق زندگی وارد میشه اینها من فقط دور میکنم اون مسئالی که ما دیروز داشتیم برای اینکه دور بشه اون چیزی گفتیم با توجه به این آیات و از هایی که گفتیم احتمام به روابط ارتباط فطری سبز شده رنگش سبزه چون مدرعه سبزه دیم همونطور که انسان در مضرعه اهمیت میره باید به زندگیش هم اهمیت بده. پرورش عاطفم بحث عاطفه هست که ما گفتیم همونطور که عاطفه ها با ظاهر نیک ساخته میشه انسان باید به روحش هم بپردازه همونطور که ما اهمیت میدیم به چهرمون به زیباییمون همونطور هم به پرورش احسات عوااطف باید اهمیت بدیم. سازش با هم که ما گفتیم بحث امتحان ها تو بحث هم شما میبینید مال دیروس اما بحث امشبمون. یک سری مقررات زندگی هست مشترک بین مرد و زن مقررات مشترک زندگی یک سری واجبات در زندگی هست به مرد یک سری واجبات زندگی هست به عده زن ما گفتیم و بازم دوباره تکرار می کنیم انسان در مقابل واجبات زندگی زن در مقابل حاملگیش نه ماه و نه روز حمل می کنه با خداست. اجرش از شوهر نباد بقای که توقع داشته باشه بعد از زایمون مثلا به پر شاخه گلی بهش کادو بده یا پولی بهش بده این برای خدا این کارو کرده فرزندش رو تربیت میکنه نه برای پاداش پاداشش از خدا میخواد اگر قضایی میپزه اگر به منزلش میرسه رو از خدا میخواد پاداشش رو از خدا میخواد و این کارها رو باید لله انجام بده چون گفتیم عبادت زندگی عبادت و خداوند در مقابل این زندگی ازمون تعهد گرفته با همون بله گفتنی ما خداوند تعهد گرفته و در مقابل تعهداتمون پیمانمون ما باید بهش ایفا بکنیم بهش عمل بکنیم یا ای الذین امنوا اوفو بالعقود عقده هایی که میشه حالا میخواد عقد ازدواج عقد تجارت هر عقدی که میخواد بشه ما باید بهش عمل بکنیم یعنی زندگی یک تعهدی هست که ما باید بهش عمل بکنیم تا اینکه روز قیامت در مقابل کوتاهیمون جواب خداوند داشته باشیم یکی از اون صحنه ها صحنه محشره که انسان از همسرش از فرزندش سرار میکنه چون ادای حقوق و واجبات شرعیشو نکرده چون به اون تعهدی که داده به خداوند در مقابل این پیمانی که با هم دیگه حلال در هم دیگه حلال شدن به خاطر این انسان پاداش می‌گاد از خدا بند پس باید بهش پایبند بشه پایبندی در مقابل اون عهدی که ما به خدا بستیم با اون ازدواج چون در مقابل ازدواج خدا بهمون به آرامش داد ثقل زندگی داد رحمت داد ما باید قدرش رو بدونیم نه اینکه بعد از ازدواج دنبال طلاق باشیم دنبال جدایی باشیم گفتیم اون زن اون میاد بعداً هم باز دوباره اون زنی که طلاق رو می‌خواد بدون سبب از شوهرش اون زن ملعونه شاید اون زن وقتی که ازدواج میکنه به شوهرش بگه چقدر خوبه انسان ما, ما،, ما با هم دیگه تا عبد باشیم زندگیمون پایدار باشه چقدر طلاق بده خوبه ما خوبه که با هم دیگه بسازیم بس از سازش میزنه اون زن سرنگش اینطوریه فقهش درکش اینطوریه ولی سبحان الله اگر مصیبتی بهش رسید یا شوهرش مریض بشه یا خدای نکرده ازدواج بکنه چی میشه اون زن دیگه الان اون چیزی که میگفت شعارش بود که انسان نباید طلاق بگیره، نباید جدا بشه، اینجا دیگه شعارش میشه جدایی، این زندگی دیگه قابل تحمل نیست. من دیگه باید دنبال راه فرار باشم. این دیگه زندگی زندگی من نیست. همون زنه اون زنی که این شعارش بود. شعار میداد ان ابغض الحلاله عند الله الطلاق، مبغوش ترین چیز طلاق. الان شعارش شعار طلاقه. خودش میخواد جدا بشه. به خاطر چی؟ تو خاطر سختی هایی که در زندگی داره متحمل میشه. دومی مقررات مشترک کوتاه آمدن در مقابل بعضی از شکوک زندگی. لا یضغ، ای لا یضغط مؤمن مؤمنه ان منها قلکان راضیه منها اخر. توصیه‌ی مردونه، همجیه توصیه‌ی زنان. شما ازدواج کردیم با هم دیگه، چون ازدواج صورت گرفته به حکم الهی بین زن و شوهر ازدواج حاصل شده باید زن و شوهر در مقابل اون مشکلاتی که در زندگی پیش میاد اون نقاریسی که در زندگیشون هست باید چشم بپوشنن رو ببندن اون مرد نباید زور بکنه روی زنش اصرار بکنه که تو باید اونطوری باشی مثل زن فلانی توقع نداشته باشه که اون زن مثل عایشه ام المومینین باشه مثل خدیجه باشه نبا توقع داشته باشه مرد اون مرد همچنین زن ما گفتیم این بحث و مقررات جندگی مشترکه بغض همدیگر رو نداشته باشیم به خاطر اون نقصی که خدا در ما گذاشته اون زنی که اومد نزر رسول الله صلی الله علیه وسلم زن مغیب اومد گفت یا رسول الله من طلاقم میخوام آزادی چون هر دوتا برده بودن اون زن آزاد شد دیگه طلاق دست زن بود زنی که کنیز باشه آزاد بشه دیگه طلاق دست خودش اگر شوهرش برده باشه من نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله من شوهرم نمیخوام گفت چرا نمیخوای، گفت زشته گفت من توصیه میکنم که باش بمونی اون زن نخواست تا اینکه عباس میاد. نظر رسول الله صلی الله علیه ای رسول الله علیه الصلاه و السلام داره کوچه به کوچه پشت سر بریده داره میدوه قدم میزنه اش بریری دیشاش از اش شده میخواد به خانمش بر برگرده خانمش برو نمیخواد شفاعتی کن با بریده میره صحبت میکنه با رسول الله صلی الله علیه یا رسول الله امره دستور گفتنا و فعلا دستور دستور او را میخوام چرا بحث زیبایی براش مطرح بود و اون زن بعدها در روایت ها اومده که اون زن پشیمان میشه چرا به نصیحت رسول الله صلی الله علیه و عمل نکرد بدونید خوشبختی در طلاق نیست خوشبختی در طلاق نیست راه حل طلاق نیست مگر اینکه نشوز حاضر بشه و خیلی اون مشکل بحرانی باشه که دیگه اونجا آخرین راه حل طلاق قبل از اون مشاوره باید بشه، نصف بشه، حجر بشه. اون مراتبی که خداوند در قرآن گذاشته، راه حل طلاق نیست، هم به نسبت مرد هم به نسبت زن. کمال فقط مال خدایانه. ما تظاهر نداشته باشیم، همه ماها انسان های کامل بشیم. همه کامل باشیم. خداوند فقط کامله. خداوند کمال را برای خوش گذاشته. ماها همه ناقصیم. هر کسی یک نوع نقصی داره. من نقص دارم، فلانی نقص داره. هیچ کس کامل نیست. فکر نکنم در زندگی اون نقصی که تو زندگی امهات المؤمنین بود تو زندگی مها پیش بیاد باید ده روز تحمل می که یک شب شما نرسول الله بود رسول الله صلی الله علیه وسلم که عمرش در جهاد بود در مکه در مدینه اون ده سالی که بودن این اونور اون جهاد می رفت. نبودن ولی چقدر تحمل کردن زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ده شبی یک شب کل روز رسول الله صحابه نشسته از صبح تا شب با مردم نصیحت میکنه، جهاد میره از این ور با اون ور عمر رسول الله اینطوری بود شرایط زندگیش اینطوری بود اونم هیچ کسم جایگاه قلبی که نکنم جای رسول الله رو در قلب اون محاطر ممونین داشته باشه بلاخره هر زنی شوهرش رو دوست داره اونم خاطر خوبی هایی که شوهرش دیده دیگه اون خوبی ها را در نظر بگیرید خوبی ها و محاصر رسولا صلی الله علیه و سلم کسی به پای اونها نمی رخه. چقدر رسولا را دوست داشتن با این وجود این همه دوستی ولی با این وجود الله صلی الله علیه و سلم در زندگیشون کمرنگه شبها میاد به منزل روزها در مسجد این زندگی باید زن و مرد چشم مشکلات چشمد بدیهای زندگیشون بکنشونند باید تحمل بکنند چون هدفشون استقرار زندگیش بخافر رضایت خداوند خدا میخواد زندگی مستقر بشه و ابلیس میخواد زندگی از هم بپاشه ثبوت مقررات زندگی انصاف در تعامل در دادن حقوق و مستحقات و معاملات نه برابری و نه همزل که در قیامت تاریکی هست انسان باید حقوقش به اندازش بده نه ما فوق حقوق و اینو للمقاففین درست در بحث, خ... در بحث معاملاته کن نباید پایمال بشه اون زن دلسرز در ازدواج نباید همسرش رو پایمال بکنه حقش بیشینه با پدرش مادرش زندگی بشه پدر و مادرش همش و غمش بشه پدر و مادرش نباید بعد از ازدواج دیگه هم مغم غم اون زن پدر و مادرش بشه و همچنین هم و غم نه اینکه که انسان دیگه به بالدن رو کنار بذاره باید دل به زندگیش ببنده حق شوهر رو با عدا بکنه همونطور هم شوهر نباید بپردازه به دوست و رفیقش همونطور که میرفته گشت و گذار کوهی دشتی بیابانی دیگه بر همون منوال کل زندگیش رو بذاره برای کی؟ زندگیش رو بذاره برای دوست و رفقاش این مقررات زندگی هست حقوق را به اندازش باید. ادا هر کسی به اندازه حقش نباید حقبار را پایمال کرد خیلی از زندگی ها هستن زنا هستن پنشنده و جمعه مثلا به فضا ای که تحتیلن به جایی که بشینن توی خونه به منزلشون برسن گردیری بکنن خونهشون، به خودشون و منظرشون و شوهرشون برسن تو جمعه تو فکره بره بیرون صحرا، بیابون، فلان، کوه، پیش پدر و مادر به فکر خونه‌اش نیست، زندگیش نیست. یه طرح نو داشته باشه تو کنه. خلوتی بکنه با همسرش. اینجای تأسفه. بر انسان ولی نه زیاده روی، نه با پایمال کردن حقوق. همشی ولی فرموده خداوند ولاتخذ هم اشیاءهم. ارزش انبال مردم مکانیست. ارزش زندگی هم همینطور انسان ارزش زندگیش رو بدونه، قدر زندگیش رو بدونه. حقش رو ادا بکنه، حقش پایمال نکنه. پایمال شدن زندگی با ایعتنایی هست. چهارمی بیاد داشتن نکیهها و فراموش نکردن اون. این بحثم برمیگرده به بند دوم. بحث حقوقه. یک بدی انسان می بینه. بیاد نکیهها باشه. این توصیه رسول الله صلی اللہ علیه و سلمه. زن همون ترکیه بعدا دوباره حدیثش خواهد دومند. زن از سخونه کجی؟ بخوای راستش بیکنش شکسته میشه. نگاه خوبیهاش بکن. در این حدیث دو دمت هست. مسئله اول اینکه زن از تن خودشه از جان خودشه قطعه تنشه همونطور که به بدن اهمیت میدی به شکم اهمیت میدی به قلب اهمیت میدی باز به همسر اهمیت بدی ولی که بدون این اسخونه کجه اگر راستش بخواید بکنین شکسته میشه یک سری عیبه ها هست باید تحملش بکنیم سردرد باید تحمل کرد بود تو توی سر سردرد رو باید تحمل کرد راه حل سردرد دنبال درمان مودنه نقد کردن کرد. و با ما باید یاد داشته باشیم اون منتی که خداوند در این ازدواج بر ما گذاش و لا تنسو الفضل بینکم حضلی که خداوند بین شماها گذاشته رو هیچ وقت فراموش نکنید و انتعفو اقربو للتقو و لا تنسو الفضل بینکم همشه عقب کنید چشم ببندید از بدیها بهتره این به تقوان زیدتره اقر اتقوابللت ان سوول ف الا بین نکن. اون فضلی که هست هر کدوم از شما زن و ووهر بر همدیگر فضلی دارید. یک جایگاهی دارید سعی بکنید کنید باشید که این امانت را ادا بکنید. پرهیز از گرفتن حقوق به هنگام خش، مردش و زنش. به هنگام خش انسان نیاد پدر و مادر دوست و رفیق در دادگاه صف بگیره که من طلاقمو میخوام در شورای حق اختلاف در پاسگاه که شوهر رو کتر زده وسائل زندگیم رو خورد کرده حقتون را در خشم نگیری به هنگام خشم تصمیم نگیری ما دیشب گفتیم اینجا هم باز نباره تکرار میکنیم بدونید که خشم انفجاره و انفجار شدن رسواهی میاره همونطور کتفت منافقینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند چهار تا خصلت خسلت, خسلت منافقه ای. یکی از خسلتهای منافق چیه؟ از خاص مفجر اگر خسومت که میده دروغ میده، تهمت میزنه بهتان چیتای بیرد اون فلان روز من را رو کتک باجان الان بحثه بحث ده سال پیش و پیش میاره تو ده سال پیش به من فلان کارو کردی باجان بحث بحث الان. این فجوره اگر خاصه با فجر اگر خصومت کرد اگر خصومت شد با شوهرش یا شوهر با همسرش دیگه چیکار میکنه منفجر میشه تو برادرت اینطوریه شوهر که عصبانی میشه تو برادرت اینطوری کرد مادرت اینطوری کرد پدرت اینطوری کرد ف نارو کار کردی چه داری میشماری عفو. گذش کن به خاطر خدا خدا که کامله خدا ذات خاصه این از تخماس. انسان باید عفو کنه گفتن ما در زندگی قرار نیست که از ده ده بگیریم همونطور که از نماز قرار نیست از ده ده بگیریم با تلاش بکنیم منم اولین کسی که نفیحت میشه اینجا من خودم هستم من خودم باید نفیحت بکنم واقعا انسان تمرکزش زعیفه از بس که مشاقلش در زندگی ضعیفه، اون حق و حقوقی که باید ادا بکنه ادا نمی کنه. و به هنگام خرش یک حرفان میزنی که نب تذکر نداشته باشید در خشم شکلات تش بشه رو سرمون بریزن به که اینکه عروس و دامادی خیر اینجا دیگه دشمن شدیم با هم بحث دشمنی هست ولی که به اون حد نرسه خدا دوست نداره پرهیز بپریذیم از خشم و عصبانیت و منفجر شدن به هنگام خشم رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرماید من طلب حقا فلیطلبه فلیطلبه فی عصا با فاقدمنی بخواد حرف بی رب نزنه چیزی که رب نداره به موضوع بی ربته نره اگر مثلا به فرض حق شما فرزندت کوتاهی کرده یا خود شوهرت اشتباه کرده یک جایی فرزندت رو کتک زده یا فلان کارو کرده یا دست رو بلند کرده نرو رسواش کن به این در و اون در بگو شوهرم نارو کتک زده آبرویی نکو فلیطلو به فی عفاف در و اقدامی به خاطر چه کسی حق نداره از شوهر بپرسه همطور که رسول می میفرمایند صلی الله علیه و آله حق نداره کسی از شوهر بپرسه چه به هم تو زدی نباید دخالت بکنه در بحث زدن نباید زن بگه حالا میاد بحث مقررات زندگی میاد اسرار بیرون برده نشه من طلب حقا فلیطلبه فی عفاف واثق او غیر فض به حقش برات شد تو زندگی شوهرت اشتباه کرده اشتباه ازش تر زده فلان روز با دختری رابطه داشته این بیشتر در تازه زندگی ها پیش میاد دختره کشف میکنه شوهرش با فلان دختر قبل از ازدواجش رابطه داشته چرا قبل از من رابطه داشی؟ شوهرم همین بعد از ازدواج میدونه که هم فلان شخص میاد پیشش میگه بله من با خانم فلان روز حرف زادم با همدیگه رابطه داشتیم اینجا دیگه جاش رسوایی نیست که همدیگه رو رسواح بکنی. باید اینجا عصب بتار ببریم اینجا باید عفو بکنه انسان. مگر اینکه الله بحث ادامه پیدا بکنه، ما میدونیم که شوهرمون هی مثلا میره زنا میکنه با این دختر اون دختر رابطه داره. بله ما باید به تاثیر از اینکه به ما ایذ داره. اونجا هست که ما باید دوباره راحت باشیم. ولی نبا با رسوایی، نه با پدر و مادر، برادر و اون و اون. رسوایی نباید باشه. باید ما برای خود مرجعیت داشته باشیم و خصوصا سبحان الله زن بیشتر در ها در خش بیانش قاصره. به نصف قرآن نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه زن مظلومه این جدا دارم میگم زن به هر حال مظلومه زن نمیتونه توقع نداشته بچه شما در مقابل مرد یه بشید میتونه از حق خودتون دفاع بکنی نمیتونی او من میونت ش و, و هو فلخصاب غیر مبین مشککی نست دختر به خدا می دادن. خدا می که دخری که زینت روی گردنش و دستش آبیز میشه که زیباش میکنن نیاز داره ضعفش جبران بشه ضعیف نیاز بیتیبی ای داره و در خصومت حرفش واضه نیست. مثلا من بهتون مثال میزنم. شوهر، هر شب دیر بخونه میاد هر شب دیر بخونه میاد اون زن میخواد تعبیر بکنه از دیر اومدن اون زن میخواد تعبیر بکنه از خشونت مرد از بی احساسی مرد بی مرد میاد اقدش رو کجا خالی میکنه ها من هر وقت لازم دارم که بری خرید بکنی وقت نداری بق دوستا و رفیقات داری ربت یا بی ربته. اینجا که داره زن بیراهی میزنه غیر مبینه مشکلش جای دیگه هست. مشکل عاطفه داره تشنه عاطفه هست دردش جای دیگه هست. مثل بچه مثل بچهی کوچه وقتی که بچه به دنیا میاد جدید وقتی که میبینه پدر و مادر می بچه بچهی کوچکتر آخ شکمم آخ سرم بچه خودش رو میزنه به زمین میاد بچه کوچکتران رو میزنه چرا؟ می جلب توجه بکنه منم هستم یکم آتفه هم نگاه ضعیفه نمیتونه بیان آتفه رو بکنه نمیتونه قلبم بگه شوهر یا پدر منم هستم یکم آتفه رو به منم بده در خصومت غیر مبینه حرفش واضح نیست بیراهه می زن مرد باید بیدونه که زن این خفلت رو داره زن به هنگام به فجار منفجر شدن بیاه میزنه این عصبانیت دست خودش نیست. ولی که آیا ما بعد آز بیم بزن؟ آیا چون ما میگیم که زن خصلتش اینطوریه، پس بهش اجازه بدیم که منفجر بشه؟ خیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مشکلی میدید، Allah بحث در حل مشکلات، بعداً فهرست میکنیم. آجیه صدیقی رضی الله شب بلند میشه رسول الله را نمیبینه میره دنبال رسول الله میگرده که شاد رفته پیش امام همسران رسول الله شک میکنه که رسول عدالت نمی کنه رسول الله میزنه تو سینه‌ش میگه جاءت شیطان و کی شیطان تو ماده وره شیطانه وسوسه وسوسه میکنه که انسان بی بی وسوسه میکنه که انسان تجسس بکنه برخورد میکنه با برای که اصلاح بشه نیاز به یکم تو هم کشیدن داره اون شوهر باید خلم خاص داشته باشه. باید دیگه ای زن به خشب دیراه هستا. چشب که پایین بیاد، تگیر گیر نده. چون زن که خشب میشه ناراحته، عقده داره تو قلبش، دیگه میخواد گیر بده. میخواد یک مقتضاف ببینه. آقا تو خیابون رد میشی، دختری نگات میکنه. اون زنه چی میگه؟ زنه فوراً میپره. ها، تو بهش رو دادی. چرا نگفتی بهش؟ چرا نمیدن فلان نکردی خب بابا جان. زن مردونه، دختر مردونه. من چی بگم بهش؟ بیراهی میزنه دست خودش نیست. دنبال که یک به نقطه از شوهر بگیره. دنبال این که منگنش قرار بده. باید خودش رو بکنه. باید خودش رو بکنه. چیز خوبی نیست. چون خفلت منافق خصومت خصومت کردن، فرقاش کردن، منفجر شدن، عصبانیت. اشتباهه. خشونت اشتباهه. نباید خشونت به خرج بدین. خشونت اشتباهه خشم از شیطان رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام میفرمایند خشم از طرف خداون نیست ثموته که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام به عایشه رو جاءت که کی, کی شیطانه نزغات شیطانه جلاب خشم رو برداشت ثموته گفت گفتی رسول توصی میگه جلاب خشم رو بگیری خشم چیزی خوبی نیست تو زندگی جلابش رو رسول الله صلی الله علیه وسلم تنبیه تنبيه میکنه زینب رو تنبیه میکنه حالا میاد قصهش به خاطر یک حرف گفت طور قرار ب به ذین به صفحهیه دو افز روی یهودی یا یه تک صبانی شد دو که به زن اون دخره یهودی پررس بدن و س ناراحت شد تا سه ماه نزدیک کرد شد تا قبل ازرققااتش. حجرش کرد که فکر... با خودش فکر می کرد که یه تلاقم دادهالا بردم قشنات اوم. عصبانیتسم ما برخورد میکنه تا اینکه زن خودش رو رسرا بکنه. یه چیزی خوبی نیست. کنیم خصومت صفات خوبی صفات منافظه. حالا کون عوض زن این دلیل بر این نیست که بی خصومت بکنه بیاد هی تو زندگیش دنبال این در اون در بزنه که ای در زندگیش پیدا بکنه حفظ احترام من نیک سخن بگوی. فقول له قولا بگوییم فرعون به موسا و هارون دستور میده که نرم صحبت بکنید سبحان الله یعنی زن و همچنین شوهر مستحتر از فرعون نیستن که با نرمی با هم باید سخن بگ بله اولا سرم و قل عبادی قول عباد اللتهی احسن بهترین اینها را بگن چرا؟ ما با دنبال اون باشیم که زبانمون ادبیاتمون درست بکنیم واقعا ما عدبیاتمون مشکل داره یه چیزی میخوام بگم قصدش نداری قلبن یه چیزی دیگه میخوان همسرمون یه چیز دیگه برداشت میکنه ما باید زبانمون فکر بزنیم الان متاسفانه اون زن وقتی که عطبانی هست الان گیر داده به شوهرش میگه الان جوابم بده همین الان الان اون مغزش نمیکشه بندی خدا خسر سوستر الان جوابم میده چرا این کارو کردی؟ آجان الان وقتش نیست بذار خشمتو بخوابه بذار این بندی خدا فکری برای خودش بکنه عقلش رو به کار بندازه تا جوابته چون خدا از ما بهترین ها را بگه و کل عبادی که لکه است بهترن ان شیطان یمزغ بینهم چون اگر مراعات نکردید اگر خوب سخنینی بهترین سخن ها را انتخاب نکردید راه به شیطان باز میکنید که بین شما تفرقه بیندازه فوجش طلبگیان و تلا و تواضع در زندگی عزت آفرینه واقعا عزت آفرینه نه که تنها نه که تنها در زندگی زناشویی کلر تو زندگی اینه سبحان الله کی حس از ما اشتباه نکنه اشتباهش سر نزنه خداوند یکامله چقدر خواهر اینجا نشستند با برادرشون با خواهرشون قهرن چیزی در زندگیشون به عنوان عفو نیست چرا چون تقوا نیست وانتقع اقرب للتقوا تون تقوا مانعه قهر میشه مانع کینه میشه چون از خدا میترسه طرف چون عفت تقواست و غیر از عفت نیست دوشنبه و پنجشنبه اعمال بالا میرن ترس از این داره اون مرد اون زن که قهر کردن با هم صرف از این دارن که اعمالشون دوشنبه که بالا میرود وقتی که اعمالشون بالا رفته دین خدا به اون اعمالشون نپذیره چرا چون قهرن از هم دیگر پنشنبه هم همینطور خب چطور میخواد بیاد جلو خدا اگر مرد با روی سفیدی میخواد بیاد جلو خدا اون زن رفته خونه پدر و مادرش قهر کرده شوهر میگه بیاد نشوش کرده نمیاد توقعی داره که خداوند عافش بکنه نماز روزش قبول بشه خیر بر به بر... چه اساسی به چه دلیلی این درست نیست زن طلا ببره کنه پدر و مادرش خلاف امر خداست حالا میاد دوباره بحث شاهیم کنه تازه کلا گفتم در زندگی چیز خوبی نیست انسان باید دنبال صلح باشه دنبال آشتی باشه نه دنبال کینه و بغض بغض هم دیگه رو داشته باشید مؤمنین همون به نصف آیه قرآن بعض هم من بعض از همدیگر هم یک سنن بنی آدم اعضا یا دیگر هم بنی آدم یک جسدن. از ما انسان ها ما باید به داد همدیگه بسوزیم با درسته یک سری اشخاص چد با طبیعت ما جور در نیان یا یک شخص گناه انج... هایی را انجام بده ما بونخش داریم به گناهش نه اینکه که رو را اخت بکنیم نه اینکه با چهره ابوس خدا من, من میکنه به پیامبره حسبت و تو زندگی مهمش ابوس باشین بر خوردتون داشته باشیم این صفات خوبی نیست به خاطر همین اینجا اونابیان ندید چهره رسول الله که عبوسه ولی با این وجود خدا نه میکنه حتی در چهره نابینا ابوس نباشید سلسله خوبی نیست ابوس بودن فرح کردن کینه و دل گرفتن دروسته رنجش خاطر داری درسته قلب قلبت آزرد شده ولی راه حلش به خاطر ایمانی خدایی که در قلبش با گذشت بکنی باذ صبر بکنی این دستور خدا اگر تقوا داری انت اقرب للتقوا این التقواس خود از مواس که اصلا عفو کنه رسول میگه از مشرکین قریش مگه نبخشی گذشت نکرد عفو نکرد صبت عفو بکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام بفرمایان ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة أزلوني بيشتهم بيشتهم كيف نبيشتهم البدوت البلود، العنود على زوجها العمود على زوجها دار رواية التي إذا آدت أو أوديت جاءت حتى تأخذ بيشت زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى زنان بهشتی شما در این دنیا اون زن که بهترین خوشی دنیا زن صالحه خیر و متاع دنیا المرأة الصالحه این اوصاف داشته باشه از زنان بهشتی اگر می‌خواهیم همراه شوهرمون توی بهشت باشیم با این صفات و رو داشته باشیم الودود ود و محبت داشته باشه زندگیش دوست داشته باشه نه اینکه دنبال کدایی باشه به هر سرکوب بزنه چرا من ازدواج کردم چرا این شد چرا اونطور چرا منو به این دادن الودود الودود چه بیاره نه اینکه بیک نه من خسته میشم، نه من تحمل ندارم، نه من بی صبرم، نه من به هوشیار بخوان ناتراش. زنان بهشی بلودن، با چه امت اسلام رو زیاد میکنن. کل رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد انتخابو روز قیامت زیاماتو بیشترین امتی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ تابوک ستن از اصحابش فقط کوتاه میان. سه. بالحلا دو منو میگه مرار منو رابیه و یهو نتعد. سه نفر نرفتن، ارتشی بودن، لشکری بودن، ده هزار نفر رفته بودن، سه نفر نیمدن. آیات نازل میشد و علیه سلسطر لذین خلده رسول رسولا حجمشون میکنه، تنبیهشون میکنه. برای چی؟ به خاطر اینکه یک واجب رو انجام ندادن. رسولا اصلا این چیلین از ما میخواد. ما بیشترین امبت باشیم. و امت رو کم نکنیم بلکه زیاد بکنیم و هی برای خودمون بهانه نتراشیم که هی بگیم نمیشه تربیت کرد نمیشه تحمل کرد الوجود الولوث العقود على زوجها العقود عقود عود, عود, عود از برگشت بازگشت اگر تصوزی اسمیده رسول الله اگر اذیت بکنه یا اذیت بشه یعنی اشتباه شد از مرد باشه چرا از زن باشه میاد دست شوهرش رو میگیره میخواد بخوابه یه شوهر مراد ببخش. چشمم نمیذارم تو اینکه چشمت نداری از من راضی نباشی شوهرش سبا کرده نسبت حدیث. حدیثه اذا او اوذیت شوهر اوذیت شوهر اذیتش کرده میاد نزد شوهرش دست شوهرش تخد و بيد زوجی ها. آداب ها خیلی از آداب ها مصد تو زندگی مروات نمیشه آداب های زندگی مظاهر زندگی حالا میاد در بحث حقوق شوهر میاد اونجا بس روش وایم خیلی زیاده از پرداختن به مسائل زندگی هرچند که جاش هست اینجا هم بگیم ولی خب بعدم انشالله مفسد تر پایین گفت پس اون زن باید حعود باشه حعود اینه که گذشت داشته باشه عفت داشته باشه بلفرضم اگر شوهرش اشتباه کرده دست دست شوهر بذاره خب الان یک شخص به خود بگید من تن به ذلت باید بدم یعنی من باز ذلیل باشم بله شما ضعیفاتید خدا ذاتاً ضعیف قرار داده نمیتونی از, از حق خودت دفاع بکنی میتونی شوهرتو طلاق بدی میتونی کتک بزنی نمیتونی زن ضعیف نمیتونه حق از حق خودش دفاع بکنه مجبور علاوه برای پایداری زندگیش چیزی تو شوهرش بذاره خدا ازش اینجا هم بحثی رسول الله صلی الله علیه و salam تو کتاب بحث رسول الله صلی الله علیه و salam رسول الله صلی الله علیه و salam می‌فرمايان ما ناقصد صدقه من مال وما زاد الله عبداً بعفا الا عزاه مولی با صدقه کم نمیشه و خداوند با عزت بهش اون چیز دیگه نمیده من من الله رفعه عفتت جذاش کردی دست تو دست شوهر بذارید باور بکنید محبتی در دل شوهرتون براتون ایجاد میشه که اگر میلیون ها هزینه بکنی اون محبت تو قلب شوهر نمیاد میگی این همسره این زنه بهشیه دارم میزنمش دارم کتکش دارم کوشش بهش میدم دارم فلان میکنم میگه شوهرم به بچه‌ها زن دنبالم ایجاد محبت دنبال محبت ولی روحش به اون محبت کم داره دنبال اینه که شوهرش محبت بهش بکنه تک میکنه با زور با گل با نمیدنم با خرید و با خرید وسایل و اسباب وسایل یخچال و, و مبل و فلان تک میکنه با این چیز به بیاد نه این اهم با این اهمیت دادن به زندگی تک نکنید محبت ساخته میشه فوتفندش که داره بهتون یاد میده اینجا فوتفندی که رسول الله بهتون یاد میده خیلی میگن حالا شوهرم اینطوری اونطوریه اون من چی کار بکنم که مثلا شوهرم با هم خوب بشه این یکی از راه ها خشبینه دست و دستش بذار رسول الله صلی الله علیه وسلم میرفت به مسجد میرفت به مسجد آیشه رو گوزه میزن نه که عایشه، دخترش باطمه هست میاد تو خونه بزرگه فاطمه ازدواج کرده بلند میشه رسول الله بوسه میزنه رسول الله میاد فاطمه بلند میشه بوسه میزنه سبحان الله من چند روز پیش یک کلیپی دیدم حالا یک از مشرقین ها حالا به زبان فارسی یه از خود که ترجمه شده داشتن داشت صحبت میکرد میگفت که بله بچه رو نبوسید بچه رو اگه نخواست که ببوسید اصلا این چیز خوبی نیست نمیدونم فکر بد میکنه شهوتش برانگیخته میشه بجون این محبت ابراز محبت چرا شما هی مثل حیوانات فکر می‌کنید که بوست زدن فقط یک مسئله شهوانی هست از شهوت برنگیختی میشه فاطمه رضی اللہ علیه با اون سنش ازدواج کرده حسن حسین رو داره ولی رسول الله بلند میشه براش آلا یا فاطمه بلند میشه آلا کدوم حق اولاتره زن برای شوهرش بلند بشه یا دختر برای پدرش هر دو هر هر کدوم از اینها هر دو تا حقشون کمتر از همدیگه نیستن اینو باید ما یاد بگیریم در معاشرات زندگی بدونیم با این کوتاه اومدن با این احساس نیاز خودمون را ابراز کردن با فعل نه با حرف نه با فقط گفتار و مثل پشه وز کردن ده گوشه شوهر بعضی از پشه پشم بفرخیدا این تعبیر رو داره بعضی از زنها خدا موافاتمون بکنه خدا اون زنهایی که خفلت دارم خدا هم ازشون بزرش بکنه این شوهر بدبخت وقتی که میاد بخونه مثل پشکی دیدید وقتی که وزوز میکنه دمیگوش آدم چطور وزوز میکنه از این گوش میاد این گوش این بر میزنی میاد این بر این طوریه. فقط میخواد گیر بده میخواد ازیاد بکنه یعنی نمیخواد زندگیش مستخر بشه هی میخواد حرف بزنه، هی میخواد. با جان شوهر میخواد بخوابه. شب دو سه خسته گوشی اومده. این زن عقده داره. میخواد باید حرف بزنه. حالا اونم شوهر از پاش واسه یک حرفی میزنه، اون پشه گوشی میشه ببخشید. تشبیه پشه بد بود. ببخشید. مادرک میخواد ولی که من بحث تشبیه اون وزوزه صدا رو کردم. تشبیه زن به پشه نیست. تشبیه فقط وزوزه. اون وزوزه‌ای که ما میشنویم. وزوز نکنی. تو خش نخواهی بذارید زمانه بره زمانه بگذاره بعدن بیاد سبحان الله یک از اشتباهات زندگی اینی که انسان همون بحث عفاف فلیتوب و فیعفاف انسان به هنگام خش میاد حقش رو میتره به دسته فکر جاش نیست ولی اگر سب بکنه خیلی راحتتر میتونه حقش رو بگیره خیلی مهمه توصیه رسول الله صلی علیة, علیه و سلم که در شینی که خشبین هست، هستی، یکی از راهکارهای درمان که مقررات زندگی هست، درمان بشه، یکی از چیزهایی که میتونید شوهرتون رو افیر بکنید، اشتباه درد یک ماه، دو ماه، سه ماه بعد ببینید به شوهرتون. من گفتم اشتباهاتی شد از من سر بزنه، شد از همسرانم هم که اینجا هستن سر بزنه. من الان دارم مستقیم میگم، خطاب گفتم به خودم، به به همه شماها هست. ولی هیچ وقت به طبشو بر نخواهم کرد چرا چون اگر روخ داده اشتباهی از اونا اگر روخ داده اگر روخ داده من عصب کردم چیزی نگفتم از کردم چیزی نگفتم الانم اگر بشنون نقدی اگر بشنون توجیحی میخندن چرا چون من با خشونت برخورد نکردم چون نمی‌مدن اون موقع من نشون بکنم تأثیرش کدوم یک بیشتره؟ کدوم یک کد... کجا میتونه خودش رو بهتر اصلاح بکنه؟ وقتی که زمانه بگذره. یک ماه، یک سال، دو سال، سه سال گذشت، بابیت حقش رو مطالبه. این ثباتیه ای که بفی عفاف نه اینکه همون وقتی که همین امشب تفیق و مسخط کن. همین امشب مشکلمو حل کن. بجون امشب جوش نیست، کجا بریم؟ زدی گشت. شر. دعوا شروع شده. سوار ماشین از این کوچه و اون خیابون، سوارم پا رو گاز گذاشته. اینجا خواست خواست خواستار حق نیست اینجا نمیشه به این طور نمیشه این وسیلش این راه روشش نیست به این, ط... به این طریقه ما نمیتونیم حق رو بگیریم غیر از تصادف بکنیم بزنیم توی کو از جاده پرد بشیم این بله این علاجه درمانه هر دو تا با هم بیمیرید اون دارم میگم مواظب باشید سوار ماشینی، رفتن به مسافرات اون زنه شیطان به زدخ می نگو. خاطراتت به زبان نیار بزش کن این عفه عف یعنی دفنش دادن ظلم کردن دفنش کردن خاطراتت گذاشتو می‌ذارین تو قبرستون دفنش می‌گورید بس بسش کنید تمام میشه مر تو که با گذاشت زندگی می‌کنی با آینده زندگی می‌کنی این از آداب زندگی مشترکه هم مردش هم زنش از مقررات زندگی اینه که ما بدونیم حقوق‌ها برابره و یک جاها اگر تفاوت شده ما به مردی بیرون زحمت میکشه حقوقی داره زنم در مقابل تربیت بچه هم حقوقی داره حقوق ها مشترکه فکر نکنید خداوند تضییق خواهی شده تضییق نیست هر کسی یک نوع حقوق برش واجبه اینطوری نیست که حق کسی پایمال بشه باید فروق فردی مراعات بکنید اونطوری که مرد حزنی اونطوری که مرد هست زن نیست من بهتون بگم از باب تذکر بهتون میگم این از باب توجیه توجیه روانشناسی بهتون میگم روانشناسی شرعی بهتون میگم نه با روانشناسی غربی ما غرب گفتیم یک تری بندها مثلا بحث بیت زدن مخالفی شخص میگه جلو بچه ها همسر رو نمیدونم اشتباه بیکنی ابراز محبت با بچه بدونه فردام ازدواج میکنه باید بدونه که زندگی پدر مادرش پر از محبت بوده این ما با فرهنگ غرب مخالفیم اون زندگی حیوانی مخالفی. یکی از چیزها بحث فروغ فردیه ظروف فردی اینی که زن معمولا اینطوریه دوست داره بیاد روی دست شوهرش بخوابه دوست داره شب تو صطب احساس آرامش دو طرف داره خدا گذاشته و جعله بینكم مودة و سکنه سكنت خدا گذاشته سبحان الله این قضیه باید معکوس بشه معمولا تو زندگی ماها زنی که پناه میبره به شوهر بنوان یک کودک میخواد کودکی خودش اون بچه ای اون کودکی که در قلب خودشه و نیازمند عاطفه و مهر و احسانه احسان هست میخواد بیاد به شوهرش ابراز بکنه شوهر بدبخ نمیتونه غرورش اجازه نمیده کبرش اجازه نمیده شوهرم طفل درونی داره کودک درونی داره میخواد بیادخونه دستشو به سرشو بذاره زیر دست همسرش رسول الله چی گفت دست شوهرتون رو بگیرید چرا؟ چون شوهرم نیاز داره نیازه به عاطفه داره نیاز به مهر داره فروغ فردیه زن به یک نوعی ارضا میشه اون دقدقه نفسیش کنترل میشه مردم بازم همینطور زن دنبال بگده من چطور شوهرمو کنترل بکنم چطور شوهرمو طرف خودم جذب بکنم مثل یک تف سرش رو روی پای خودت دستی به سرش بکش. این راه زندگی هست نه اینکه ها تو شب که میخوابی به خودت میخوابی میری با دوست رفیقات میخوابی نمیدونم اینطوری هستی اونطوری هستی نه این راه روشش نیست راه روشش اینه که خودت بری کنارش خودت نزاری که بخوابه تا اینکه تا نخوابی تو نخوابی هدف استقرار اون باشه این راه کسب گفتم کلیدهای خوشبختیه راه محبت ایجاد محبت شما با این روش با این عمل شوهر داره میبینه با این عمل عزت مییابی در قلب شوهر ولی گفتم مکر نباشه تو زندگی مکر نباشه که به علت مکر بعضی زنها هستن به خاطر اینکه مثلا به زن اول به خاطر که زن دومش طلاق بده و همین چیزی میان مکر میکنن تو زندگیشون یک شیله های به کار میبرن برای آلا یا این که عیب تراشی بکنن از ذن مقابل و خودشون خوب جلبه بدن چون همیشه انسان اینه وقتی که یک رقیب داره تو زندگی سعی میکنه خودش بهترین باشه نمیخواد کسی بهتر از اون باشه برای که بهترین رو ثابت بکنه، خصوصا در بحث تعددات ثابت بیشتر رخ میده. همین که زن دوم هست، نمیدونم تجربه داریم نه. تو زندگی اینطوریه. خانواده زن اول و زن اول دنبالن که یک سوژه بکنن زن دومی یا زن بعدی. حالا میخواد دوم باشه، سوم باشه، چهارم باشه. دنبالن سوژه بکنن. این نمزاد داشته، نداشته. این دختر با حجای بوده، نبوده. دنبالن که اون عقده خودشون این به این سب خالی بکنن. حق تو میخوایی بخواهی، با عفاف بخواهی، راهش نیست. شوهرت اگر ناعدالتی میکنه بیا به طلب. این راهش نیست که شما با مفروحیله بیایید، جلب توجه بکنید و محبت را به خودتون بدوزید. این راهش نیست. اینو من میگم. از باب توجه به این مسائل و خلالهایی که در زندگی میاد حفظ و اصرار زناش این چه مردش زنش صالحات و قانتات و حافظات للغیب زنان صالح قانت هست اهل قنوت یعنی اهل عبادت هست یعنی چه اهل عبادت سبحان الله زن میگه من جله و شوهرم نماز بکنم فکر میکنم ریا بیشه قرآن نمیتونم بکنم ذکر نمیتونم بگم میتونم ریا بشه سبحان الله خب این که نیت که دست تو هست تو به نفس خودت بگو من میخوام به یاد بدم قران بخونه تو خونه. میخوام عبادتش بکنم قران بخونه. قران بنده تا شوهرم بیا قران بخونه. نماز بخون تا بدونه شوهر که نماز سنت بافیکونه بکنه. شوهر توی خونه شوهر نماز سنت بعدیه خوندید؟ قبلیت خوندید میخواد بریم مسجد؟ این زن صالحه، قانته، اهل خنود، اهل عبادت. شوهرش شو وادار به عبادت میکنه. وادار به عدالت میکنه. اگر بر فرس زندگی یه تعدد مثلا به فرس ایجاد شد میگه این شوهر عدالت داری نمی کنی ها مواظب باشا جهنم اونجا اون مردی که عدالت نمیکنه میل میکنه به طرف یک زن روز قیامت یک طرف میاده ظلمات زلم روز قیامت ها بدونن حالا چه مردش چه زنش ظلمی کردن بدونن در همین دنیا کساس میشه هر شخصی از ما مؤمن قبل از آخرت کساس شک اون زنی که شوهرش وادار میکنه برای برخورد تون با زن مقابلش بدون اون زن ظلمی که داره میکنه این کاری که به شوهرش داره وادار میکنه عقوبتشو در همین دنیا دید. چون ظلمه چون ماکره. و یا مکرونه و یا مکر الله و الله خیرون ما از عقوبت خدا باید بتحصیم پس قارت باد باشیم در عبادتیمون در معاشرت زندگیمون چون گفتیم معاشرت زند و این عبادت را درست انجام بدیم هم و برای خدا انجام بدیم حافظات للغیب حساد این های زن مؤمن رو میگه اون زنی که رسول الله بیگه بهشتیه حافظات غیبه سر زندگیش را حفظ میکنه نمیاد افشا کنه نجلو جلو پدر مادرش نه جلو کسی دیگه حافظات للغیب بما حد الله خدا حفظ کرده حالا یک دختری مثلا رابطه داشتش کشف کردی دیگه سترش کرد نه گوهی اینکه این در اوندا به شوهران رابطه داره شوهرم اینطوریه مثل زن اسماعیل نشید که خدا بعد از انتقام بگیره سبب بشه که تو زندگی تو جای بیفته انسان با حفظ اسرار زندگیش رو بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایان من اشر الناس عند الله منزله اليوم القیامه الرجل یفضي الى امراته وتفضي الیه فمیاں سرها با ترین انسان ها کسانی اند روز قیامت اون مردی که میاد با همسرش یا ها همسرم همینطور میان با همدیگه هم, دیگه هم میکنن میکنند سپس سر زناشوییشون میگن شوهرم اینطوری کرد زن میگه مرد میگه زنم اینطوری کرد مواظب اسرار چه بخشی گفتند آد بخشی هم باشه چه میخواد مسائلی که تو زندگی پیش میاد کتک خوردید فش خوردید هر, هر چی که شد تو زندگیتون هر چیکاری اسرار زندگیتون جلو و دهانتون رو یک گیپی بذارید بیای باشید این با حفظ بشه این خسلتی هست که خدا هزتون در قرآن قدسه حافظاتون للغیب این صفات زن مؤمنه هست و ضعیف زن یا حقوق شو یا معشرت نساء ای زنان شما هم خطاب شماسته خطاب من نیست یا معشر نساء چرا جوهری ترفیس رو بعد میکنه ببخشید من از که دارم یام دلیل حدیث کار من نیست حافظاتون للغیب رو خدا گفته اینجا هم خدا برسولا داره میگه از طرف خدا یا معشرت اتقین الله والتمس و مرضات ازواجکل ای زنان تقوای الله داشته باشید از الله بترسید و دنبال و جویای رضایت شوهرالتون باشید شوهرتون ازتون راضی باشه چرا جون بهشیره پای کیه شک نیست زیر پای مادرهاست ذکر تذکر دادم و پارسال دو تا حدیث اومده یک حدیث ضعیف حدیث دیگری شیخ میگه حسنه پارسال به تذکر دادن خدا روز خیرشون بده بله زیر پای پدر و مادر هست ولی بله زیر پای شوهر هم هست حالا میاد حدیثش بود هم میاد حقوقی هست حق ما در مقابل مادرمون یک وظایف پدر در مقابل شوهر هم وظایفی داریم این وظیفه همون تو که در مقابل خدا وظیفه داریم نماز میخونید اینجا هم یک وظیفه از خدا بر گردنمون گذاشته ملتزم باش التماس یعنی چی ای دنبال و جویای باشی سخت بکوشید دنبال رضایت شوهر فان المراه لو تعلم ما حق ما حق زوجها لم تدل قائمه ما حضر غداته وعشائه قضاه وعشائه میگاد زن بدون حق شوهرش همچنان افساده شامش بیاره نهارش بیاره بعضیا سبحان الله از این غرض زده ها روانشناسا میگن وقتی که میگن مثلا زن میگه که مثلا شوهرم از من توقع داره در نهار درس بکنم غلط کرده کی گفته پول داره ازدواج کرده بده بشه برم شام از بیرون بخره میگه کلفت گیر آورده بره نوکر بگیره میگه وظیفه تو لعنتی بیتونی سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و آله میگه جویای رضایت شوهرتون باشید با چی اگر بدونید حق شوهر اسمی نمیشینید مادامی که شوهرت تو خونه نشسته نمیشینید شامش بیاد نهارش بیاد لباسشو تو بزن، برای چی راضی بشه شوهر باید انسان جووا باشه. این چیزی که الله ال الله عليه گفتم مرد میبینه با این راهکارها دارم بهتون میدم. شما میپرسید من چطور محبت را ایجاد بکنم در قلب شوهر. اینها غونچه گله هایی هستند که شما هزینه میکنید میخرید برای این و اون می بیمارستان بیمار سای این گله ها ساده هست شما دارید میکاری. اونم کشتی دارید میکنید که خار درش نیست. کلی هم بوی داره خن اون شوهر دیگه مغزه تنگی از خوبی ها که داره میبیده شرمنده ته دیگه فرش نمی بالا بیاره چه دارم میگم شرمنده اعمالت، کردارت اسیره حبت است حبت قرارش داری اسیرت شده اون زن دیگه اسیر شده باقند دارم میگم اینطور پیش میاد با این اعمال رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرمایان لا یصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة تسجل لزوجها من, عظم من عظمي حقه عليها يعني قرار بكسب كم سجد بكسب كلم يقولون أنه لا يسجد بكلم بخاطر حق شوهر والذي نفي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجث بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه رسول الله قصامي فورد قصامي كسب جونش بذلك مثل هم اگر زن اون شوهرش مجروح باشد بالا تا پایین با زبان زخمش را بلیشه زخمش را بلیه درمان بکنه با زبان شوهرش که آزده نشه. چون حالا بحث پزشکیش که آب دهن یک وسییده ای برای بند شدن خون هست اون مثل دیگره برای درمان بعد از نه همیشه فکر نکنید این همیشه هست. بحث پزشکیش که یکی از درمان بعد از هست جای خودش هست. اگر زن این کار رو انجام بده شب و روز این کار رو انجام بده حق شوهرش هداره کرده حقی خدا خواسته از زن این از حقوقه اولین وزیفه که زن داره تو زندگیش توقیر و احترامه. زن باید تو زندگی بدونه شیر بغ با... میدونید یک وحشی تو جنگل داره مثلا شیر جنگل مشخص مرد با امور سلطان جنگل مشخصه کیه درسته مشخصه کیه هیچ وقت خودتون زلیل نکنید زبان درازی نکنید که کوتک بخورید این زبانتون کنترل بکنید فرو ببرید داخل بیرون نیارید بلبل نکنید زنبود نباشید هی نیش بزنید. هی نیش دادید کتر بیخورید بعد میگه چرا کتر خوردم شیر رخ ندارد شیر رحم نداره شکرشون میبینی رحم نداره خش داره تغییر داره. داره مرد اگر اثباتش کردید تغییر داره میزنه همه چیز میشکنه خورد میکنه کوتاه میکنه خود را خورد, خورد زلیل زنی خب این راج نیست حالا کت خوردید خوردی چی داشتی شو کی زیگی تو نمی‌آیی؟ از رجال قوامون علی النساء بنست قرآن مرد قیومه می‌گویم یعنی حق قیومیتشو بدای بیاره. حق احترامشو بیار خدا در قرآن آیه بعدی و قدم باب و قدت قمیسه من دبور و آلفیا سیدها لد الباب آلفیا سیدها شو ات به شوهرشی چی جورش تیید آقا آقات افتخار بیشتر با بکنی هر زنی بعد به شوهرش افتخار بکنه نه اینکه بالخاطر سر من چه شوهری یک زن گرفت دو زن گرفت سه زن گرفت چهار زن گرفت این شوهر روم نمیشه روم بالا بیاره زن روم نمیشه شرموندم هر جا میرم تکوف تا تو چرا شدی تو چرا نمیدونم زن کردی؟ تو چرا فلان کردی زن عادت شونا تاریخ تو نکنن اونها خودت حاطه زندگی تون هستن چقدر از زندگی های متعدد هستن خوشبختن زندگی های متعدد شوهرشون حقش رو میکنه و اون زنی که فکر میکنه خوشبخت شوهرش مال خودشه بدبخترین انسان روی زمین هر روز کتک می‌خوره شوهرش توی هم نیست خوشبختی زندگی به انحصار کردن شوهر در خودمون نیست به احترام و توقیر متقابله احترام کردید تقدیر کردید از شوهرتون تکریمش تق... کردید کرم میبینید احترام میبینید توقع نداشته باشید مثل زنبور نیش بزنید بعد احترامتون هم شوهر نگه بداره هیچ وقتا به خودت نجاافت ندید تو زندگی مردم دخالت بکنید حرامه ملعونه اون زنی که بره زن دیگر را بر شوهرش خراب بکنه بگه شوهرت داد بخ این شوهر بهش میگن تو چرا این کارو کردی تو چرا خودتو خار کردی چرا شوهرت اینطوریه چرا شوهرت اونطوریه وسوسه بس و شک در قلب خواهر مسلمانشون ایجاد میکنن که اون, اون زن بیاد تو صورت شوهرش بیایسته توقیر بکنید، احترام بکنید، حتی اگر همسر شما نیستن، همسر مردمان، حرمت اونها را نشکنید که اون زن سبب بشه حرمت شوهرش رو بیشکنید. سید به هر حال، سید ارکونه هست، احترام ها و داشته بشه. شما نوکو پدر دارید، من اینجا، نصف عمر پدرتون شدم نشم اینجا. من بیام به پدرتون چیزی بگم، بهتون بر میخوره، احترام داره، تقدیر واد بشه. چرا؟ این خدا در قلب ما قرار داره. شما بدونید الان شاید اگر بچه هاتون کوچکن، بزرگ شدن میبینن بعد دیگه به شما حق نمیلن اگر پرخاش کردید پر صدا کردید ظلم کردید به پدرشون فردا همون بچه ها تو صورت خودت میستن سعی بکنید زندگی تو مستقر بشه این خلاصه بحث امروزمون و آخر عمل الحمدلله رب العالمین و صل الله على محمد و على محمد